قاهره مصر هفته فوریه 1964 چوب‌های بیکار رفته در نمای داخلی این ساختمان زیبایی خاصی با آن بخشیده بود و من را به یاد عطر و طعم رستوران‌های عالی برلین میانداخت. این یکی از ویژگی‌های خوب قاهره بود شهری که اکنون در آن زندگی میکردم. وقتی به اینجا وارد شدم دریافتم این زیبایی با آنکه ریشه اروپایی دارد اما از آن پرزرق و است چون مصری ها حلاوت مخصوص خودشان را با آن اضافه کردند. در رستوران باشگاه المعادی نشسته بودم. زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت که آن را از مکان‌های اطرافش متمایز میکرد. طرح معماری این رستوران توجه من را به شدت به خود جلب کرده بود. اینجا به شکل یک خمره شراب ساخته شده بود و قصرهای پادشاهی آلمان را در نظرم مجسم میکرد. معمار این مکان هیچیک از جزیات را از قلم نیانداخته بود. حس می کردم پیشخدمت های رستوران عمدن سعی می کنند ترکیب بوی چوب درخت صنوبر با انگور به مشام مشتریان برسد. احساس خوبی به این مکان داشتم. پشت میزم نشستم و طبق قرار قبلی منتظر آقای کارل دیبوش ماندم. تقریبا یک ساعت زودتر از موعد مقرر آمده بودم. چون خیلی استرس داشتم و نمیخواستم با تاخیرم خودم را به درد سر لیوان آب را سرکشیدم. کشیدم. به حوادث سفر پرماجرایم فکر می کردم. سفری که دو هفته پیش شروع شده بود و من به خواب هم نمی‌دیدم که این سفر به کشوری ختم می شود که تمام آنچه دربارش می‌دانستم فقط اهرام سلاسهش بود. سعی می کردم به خودم بقبولانم، من واقعاً این سفر طولانی را پشت سر گذاشتم. از آلمان به سوئیس و سپس ایتالیا رفتم و از آنجا با کشتی و از راه دریا به مصر آمدم. اگر کسی به من می گفت که چون این سفری آن هم در چنین مدت کوتاهی انجام داده، قطعاً اجازه نمی دادم حرفش را تمام کند و از اون می خواستم تا این حد اقراق نکند. به ویژه اگر حوادثی که بر من گذشت رو هم تعریف می کرد از وقتی به مصر رسیدم سعی کردم دوباره خودم را پیدا کنم از آن لحظه که لورنزو پای پله های کشتی در جنوا مرا ترک کرد تا الان هنوز هم نفس نفس می زنم. لورنزو با لبخندی بر لب کیف کوچکی که خواهر مارگریتا آماده کرده بود به من داد و با زبان دست و پا شکسته آلمانی گفت به امید دیدار خواهر باعتریست مدارک سفرم که مربوط به صلیب سرخ بود به علاوه لباس راهبه ها که بر داشتم کارها را برایم آسان می‌کرد. انگار همه درها به راحتی برایم گشوده میشد و دل اطرافیانم را نسبت به من نرم می‌کرد. یادم میآید مأمور چک کردن گذرنامه مسافران در بندر اسکندریه از نفر جلویی من دلیل سفر و زمان و مکان اقامتش را پرسید. انقدر در کارش جدی و سختگیر بود که هر لحظه فکر می کردم آن مسافر را به کشتی برمیگرداند تا به همان جایی که از آن آمده بود بازگردد اما وقتی من به او نزدیک شدم سرش را پایین انداخت حتی به صورتم نگاه نکرد بلافاصله مهرش را برداشت بر مدارکم مهر زد و بدون اینکه برای ورود معطلم کند با سر خوش آمد گفت و معدبانه اشاره کرد رد شوم حس احترام را میشد از شهرش خواند از همون ای که قدم به شهر اسکندریه گذاشتم، عاشق این بندر زیبا شدم. شهری که لبخندش در ساختمان های یک دست بود. ساختمان های فشارده به هم، همچون گردم بند علماس شهر را به زیبایی تزین کرده بود. زربات امواج دریا شن‌های نرم ساحل را می نوخت. در سه روزی که آنجا بودم، یعنی قبل از سفرم به قاهره، به شدت به این شهر علاقه شدم. بعد از آن همه ناملایمتی که از روزگار دیدم و بعد از فراری شدنم، این شهر آن گرما و انرژی که نیاز داشتم به من میبخشید. پیوندی که با این شهر داشتم فقط به خاطر تمیزی شهر یا زیبایی معماریش نبود، بلکه به خاطر لبخند همیشگی احالی آن بود. وقتی میان آنها راه میرفتم احساس غریبی نمی‌کردم. من از کشوری آمده بودم که مردمش وقتی یک نفر متفاوت با خودشان را فورا سرهایشان را به طرفش کج می کردند. حتی اگر این تفاوت به اندازه یک سرانگشت بود اما قاهره شهری بزرگ و بسیار شلوغ و پرجنبجوش بود حتی از برلین هم وسیعتر و شلوغتر از وقتی به سکوی ایستگاه بزرگ قطار در میدان شهر گذاشتم احساس خاصی به این شهر پیدا کردم حس کردم این شهر قرار است سالها وطن من باشد میدان شرق با مجسمه از فر... فرعون رامسس تم... تزین شده بود. قاهره به عنوان پای تخت کشور آن آرامش اسکندریه را نداشت. اسکندریه را در مقابل قاهره مثل یک دختر بچه ناز پرورده تصور می‌کردم. اما قلب قاهره شب و روز می و لحظه ای از حرکت نمی اینجا زندگی به شدت جریان داشت. در تاکسی نشستم. از ایستگاه قطار تا مقصدم، کم کم از آن ازدهام و شلوغی شهر کاسته شد تا جایی که در نهایت به طور کامل همه جا خلوت شد در سمت چپ جاده مزارعی یکدست قرار داشت و در سمت راست نماد کشور و شاهرگ حیاتی آن نیل بزرگ و باظمت روان بود محله المعادی مثل یک باغ بزرگ بود که درختان بلندی بر آن سایه انداخته بودند و در میان آنها خانه های کوچک و بزرگ قرار داشت و معمارانش به زیبایی هرچه تمامتر آنها را ساخته بودند دوباره لباس راهبه هایم نقش خود را در برخورد با کارمندان هتل به خوبی ایفا کرد آنها کمک کردند خیلی زود در اتاق خودم اسکان یابم دائم مراقب بودند که اقامت راحتی در آنجا داشته باشم هر خواسته ای داشتم بلافاصله اجابت می شد به خاطر اینکه مرا شخص مقدسی می دانستند بعد از آن سفر طولانی حسابی استراحت کردم سپس پاکتی که مارگریتا به من داده بود برداشتم و محتویاتش را بیرون آوردم. یک نامه خطاب به دوستش مادر کولینا یافتم. مادر کولینا در یک مهد کودک آلمانی کار میکرد در نامه به او سفارش خواهر بیاتریس را کرده بودند. داخل پاکت تکه کاغذ تا شده دیگری هم بود و روی آن نام کارل دیبوش و یک شماره تلفن نوشته شده بود. زیر آن نوشته هم تذکر داده بود که بگویم از طرف عدسا آمدم. در ادامهش نوشته بود که به هر چیزی که نیاز داشته باشم او کمکم خواهد کرد. دیروز صبح زود بیدار شده بودم. بعد از صبحانه از مسئول پذیرش هتل، آدرس مهده کودک آلمانی را پرسیدم. وقتی خواستم بروم آن مرد مصری اصرار کرد همراهم هم بیاید و شخصاً مرا برساند. در این چند روز که به این کشور آمده بودم، دریافتم که این عادت آنهاست این اخلاق آنها که نشان دهنده مهربانی و سخاوتشان بود بسیار متعجبم میکرد. این اخلاق خوبشان را دوست داشتم و از آن خوشم میآمد همیشه آماده کمک کردن بودند اما من با یک یکتن... تندگی آلمانی هم گفتم که می‌خوام تنها بروم مرد تسلیم شد و نقشه دقیقی از مسیرم تا آن کودک را برایم آماده کرد به قیابان دوازده رسیدم. به مهده که نزدیک شدم قدمهایم را آهسته تر کردم. نزدیک دیوار مهده پشت یک درخت بلند پنهان شدم. شاخه های درخت از پشت دیوار به درون محوطه مهد خم می و روی باخچه های آن سایه می انداخت. صدای دخترکانی که به چپ و راست می دویدند همه جا را پر کرده بود. در میان آن سر و صداها صدای راهبه ها شنیده می که پشت که هم بچه ها را صدا میزدند و سعی می‌کردند آنها را به صف کنند تا برای ورود به کلاس آماده شوند. مدتی همانجا ایستادم و به راهبه هایی که دخترها را به صف می‌کردند نگاه کردم. سؤالی ذهنم را درگیر کرد. این چیزیه که من دوست دارم باشم؟ حرف‌های خواهر مارگریتا را به یاد آوردم. یادم آمد که می‌گفت احساس می‌کردم راهبه شدن پاسخی به ندای درونیم است. به این فکر کردم که راهبه شدن من فقط وسیله برای تغییر قیافه و فرارم بود. شرایط ایجاب می‌کرد مدتی نقش یک راهبه را بازی کنم. اما میدانستم که نمیخواهم بیش از این در آن نقش بمانم. آرامشی که از بعد ورودم به این کشور تمام وجودم را پر کرده بود، تشویقم میکرد که دوباره همون زن قوی گذشته بشوم. نه از آینده بترسم و نه از شکارچیانی که به دنبالم بودند. دست نشانده های آنها نمی توانستند در این وطن جدیدم مرا را بیابند. اینجا دستشان به من نمی رسید. سعی کردم در ذهنم جستجو کنم. آیا من علاقه داشتم زندگیم را وقف خ... فقط وقف خدا کنم؟ هیچ ندایی مانند آنچه که مارگریتا در حرف زده بود نشنیدم. مدت, مدت زیادی آنجا ایستادم. در نهایت تصمیم گرفتم همه چیز را از نور شروع کنم. سرنوشت مرا به این کشور پرت کرده بود تا بدون هیچ ترسی زندگی جدیدی را شروع کنم و آنگونه که میخوا زندگی نمایم از پشت درخت بیرون آمدم و از راهی که آمده بودم برگشتم خیلی زود به هتل رسیدم مسئول پذیرش هتل از بازگشت من متعجب شد فکر می کرد تمام روز را رو با دوستان راهبم خواهم گذراند با شماره که روی آن تکه کاغذ نوشته شده بود تماس گرفتم فردی به زبان آلمانی جواب داد. من لیلیان بیکر هستم. کی؟ لیلیان بیکر. چند لحظه مکس, کرد، مکس کردم و ادامه دادم. اودسا شماره شما رو به من داد. مختصر جواب داد. فردا ساعت هشت است در رستوران باشگاه المعادی میبینمت آن روز را رو در اتاقم گذراندم. سفرم در کنار لباس های مخصوص راهبه ها، یک میراهن آبی هم با خود داشتم. آن را از کیف کوچکم بیرون آوردم. لباس راهبه ها را در کمد اتاق گذاشتم. تصمیم داشتم زمان ترک هتل آنها را همونجا بگذارم انگار که فراموششان کرده ام. ساعت شش و نیم آماده بودم به طرف باشگاه بروم. همون دوستم که کارمند هتل بود این بار نیز نقشه دقیقه مسیر را به من داده بود. نگاهی به خودم در آی نداختم. سنم کم کم داشت به چهل سال می رسید. جسمم هنوز آن تراوت جوانی را حفظ کرده بود. از این بابت خوشحال بودم. موهای تلاییم را شانه کردم و به دو طرف صورتم انداختم. این کار را دوست داشتم. می دانستم موهایم با این مدل زیبایی تحسین برانگیزی پیدا می کند. از اتاقم بیرون رفتم. احساس دختر سرزنده ای را داشتم که در جستجوی شادی و خوشبختی است. نمیخواستم نگران چیزی باشم. صدایی رشته افکارم را پاره کرد. اصلا متوجه حضور کسی در کنار خودم نشده بودم. آلمانی هستی؟ نگاهش کردم. مردی حدودن 50 ساله و قوی حیکل بود. با چشمانی سبز. پیراهن آسین کوتاهی به داشت. به نظر می‌آمد آمد این لباس را پوشیده تا ازالت قوی بازویش را دهد. زمستان گرم مصر به او اجازه می‌داد چون این لباسی بپوشد. شده بودم. نمی دانستم آیا این همان کسی است که باید با او ملاقات می‌کردم یا نه. جواب دقیقی ندادم. شاید ببخشید مزاحمت شدم و ناگهانی اومدم. بذار برات توضیح بدم. دوستانم رو که اون گوشه پشت میز نشستن می بینی؟ به سمتی که اشاره میکرد نگاه کردم. سه مرد پشت یک میز نشسته بودن. وقتی به آنها نگاه کردم لبخند زدند و لیوانهایشان را بالا بردند. من سر دو چیز درباره تو با اونها شرط بستم. با لبخند ای که روی صورتم بود تشویق شد حرفش را ادامه دهد. شرط اول این بود که تو حتما آلمانی هستی. فکر می کنم این شرط رو بردم. می خوای شرط دوم رو بدونیم؟ منتظر پاسخم نماند. شرط دوم اینه که فردا دعوتم رو برای شام قبول می کنی. ساعت هشت جلوی در باشگاه منتظرت هستم. همونطور که با آمدن ناگهانیش خافل گیرم کرد، باز هم کاملا ناگهانی و بدون اینکه منتظر جواب من بماند، برگشت و به طرف دوستان خاندانش رفت که در گوشه رستوران نشسته بودند. احساس کردم دستی آرام به کتفم می زند. فکر کردم همون مرد دوباره برگشته است. لیلیان بیکر، من کارل دیوش هستم. با تعجب به او نگاه کردم. چشمهایم گرد شده بود. او هم با تعجب به من زور زده بود. گفتم، تو، تو که فرشته ای؟